نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد که روز مهنت و غم رو به کوتحی آورد به مطربان سبوهی دهیم جامعه چاک بدین نوید که باد سهرگهی آورد بیا بیا که توحور بهشت را رزوان در این جهانز برای دل رهی آورد همی رویم به شیراز با عنایت بخت زهی رفیق که بختم به هم رهی آورد به جبر خاطر ما کوشکین کلاه نمد بسا شکست که با افسر شهی آورد چه ناله ها که رسید از دلم به خیرمن ما چو یاد آرزان به خرگهی آورد رساند رایت منصور بر فلک حافظ که التجا به جناب شاهنشاهی آو